روزی که شبت از سمان فترت باندم که شبد ازن نجومن کدرت، من دامن تو بگیرم در عرصات گویم سنما به عی زنبن قتلت سر از همه ناکسان نهان باید داشت راز از همه ابلهان نهان باید داشت بنگر که به جاوی مردمان خود چه کنی چشم از همه مردمان نهان باید داشت ساقی چو زمانه در شکست من و توست، دنیا نه سراچه نشست من و توست، گزان که میان من و تو جامعه است میدان به یقین که حق به دست من و توست. عمری به گل و باده برفتیم، بگشت، یک کار من از دور جهان راست نگشت، از نیچو نشد هیچ مرادی حاصل، از هرچه چه گذشتیم، گذشتیم، گذشت.